بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين والاه وصحبه اجمعين 12 امين درس است از درس هاي از سوره یوسف آیه 28 فلما رأى قمیصه قد من دبر قال اینهو من قید کن اینه قید کن عظیمون یوسف اعرض عن هذا استغفری لدم بکی اینکی کنت من الخاطی فلما رأى قمیصه قد من دبر لختی که عزیز مصر یا اون قاضی که حکم قرار داده بودن دیدن که قمیصه یوسف از عقب پاره شده قد من دبر گفتیم پاره شدن از بالا به پاییم قال اینهو من قید قال کی گفته عزیز مصر یا الا اون قاضی انه من کیدکن این از مکر شماست مقصر کی اینجا واضحه مقصر زن طبقه این قضاوت و این داوری از مکر شما زناست این کیدکن عظیم شما زنان کید و مکر و نیرنگ شما خیلی بزرگه بعضی ها این آیه را در غیر وجهش ازش برداشت یا استفاده میکنن مطلقا میگن زن مکار زن صاحب نیرنگه و اونم نیرنگی بزرگ مطلق زنان نه اینطوری نیست اینجا الله از باب تعیید و تقریر نقل نمی کنه قَالَ اِنَّهُ مِنْ کیده کن این سخن از سخن الله متعال نیست وله هرچه که بزر مفسرین گفتن که گفتن اینجا حرف سخن الهی در بحث این که رنگ و نیرنگ زن بزرگه ولی سیاق و جمله بحث داوریه و قضاوت و بحث عزیز مصر جمله اینو میگه که اون داره میگه زنا شما مقصرید و مکر شما زنا هم بزرگه. مکر شما زنا بزرگه شما زنا مکر میکنید درسته یک قاعده کلی هست زن چون ضعیفه برای دفاع از خودش از مکر استفاده میکنه ولی قرار بر این نیست که هر زنی متهم به مکر باشه و یک مسئله ای که هست اینجا که گفتم هر خبری که الله نقل میکنه حکم ازش برداشت نمیکنیم مثلا اونجا داریم برادران یوسف یوسف رو در چه ها انداختن ما بریم برادر ما تو چه ها بندازیم میگیم خدا گفته در قرآن برادرش رو تو چه ها انداختن پس حدما خوب بوده که تو چه انداختن خیر هر حرفی سخنی الله در قرآن نقمی کنی نمیتونیم ازش حکم برداشت بکنیم بگیم این خبره و این حکمه که ازش برداشت کردیم مثل جریان اصحاب کهف وقتی که بیدار شدن یکی ازشون رفت تو شهر و برگشت بعد دوباره دیگه قابیدن و بیدار نشدن مردن قال ابنو علیه هم بنیانه بنیانی بساطی خونهی بسازیم که اینجا تبدیل به یک زیارتگاهی بشه همونطور که قوم نوح اومدن بزرگان خودشون رو واسطه قرار دادن بین خودشون و خداشون و در شرک گفتند اینا هم اینطور گفتن پس بنیانی بسازیم که نمادی باشه از این بزرگانی که این قد عم کردن مال چند قرن پیش بودن نمیشه از اینجا حکمی برداشت کرد بگیم که چی ساختن روی قبر حالا چه میخواد مزاری باشه زیارتگاهی باشه چی میخواد هر نوع ساخت و سازی بر روی قبر حرام در شرع ما چون اونجا انجام دادن دلیل بر تاییدشون نیست رسول الله صلی الله علیه و سلم چنانچه در صحیح مسلمه این مسئله هم فقط مال بگیم که وهابی ها یا سلفی ها یا فلانی ها نیست این حدیث مدرکیه که ازش علمای چه شافعی مذهب چه حنفی مذهب چه مالکی مذهب و حنبلی مذهب اومدن ازش برداشت کردن در حرمت بنا ساخت و ساز روی قبل خب شما برید قبرسان نگاه بکنید نه النبی صلی الله علیه وسلم ان یکتب علی القبل یکتب و یجسس و يبنى عليه بس راس سناهي کرده نوشته بشه روی قبل برید نگاه بکنید اون لوحایی که بر سر قبره برید شما از صحیح مسلم باز بکنید امام نبوی کی از بزرگان ائمه شافعی است شرحش رو بر این حدیث بخونید شرحش رو بر این حدیث در صحیح مسلم بخونید مشخص واضحه ماده داریم شافعی مذهبی پس چرا به مذهب اون عمل نمی‌کنیم چرا می‌نویسیم روی لوح حدیث صحیح مسلم و مذهب بر حرمتش بنا کردن روی قبر آجرچینی چینی ان هر نوع بنا از همون خاک قبر به قب برگاردن بشه اجازه نداریم که بیاییم قبر را بالا بیاریم با سنگ و بلوک و آجر حرامه نه النبی سوسن یکتاب علی القب و ان یجسس گچکاری بشه سیمانکاری بشه جس یعنی گچ اینا شرع ماست دین ماست چون اینها اصحاب کف این کارو کردن دلیل بر تعییدشون نیست نست سریع حدیثی مسلمه و اینم مذهب اهل سنت اینا هست که ما باید یاد بگیریم یادآور یادآورش بشیم خب اینجا الله داره نقل میکنه از خبر عزیز مصر و موقفش در مقابل زنان زنا مک دارن خب یه تن هشداریه برای ما الله که داره نقل میکنه که زنا مک دارن ولی بدونیم این کید شیطان کان ضعیفه اگر مؤمن و متقی باشیم نیرنگ و مکر زن برای ما ضعیف میشه همون طور که کید و شیطان ضعیفه مؤمن قوی زن نمیتونه فروبیش بده هر که کیدش و مکرش بزرگ باشه یوسف آیه این کید دو نیرنگ همسر عزیز مست آیا تونست او را گمراه بکنه؟ تونست فریبش بده نه نه تونست چرا؟ چون کید و نیرنگه شیطان ضعیف و همچنین زنان از باب اولا یوسف اعرض عن هذا یوسف تو چش بپوشون الا یا میگم قاضیه خطاب قاضیه یا خطاب بیشتر مفصل میگن خطاب عزیزه همسر زلیخا عزیز مصر یوسف تو چش بپوشون از این جمله خیلی برداشت کردن علما خیلی مسائل برداشت کردن یوسف تو چش بپوشون و تو ایزن استغفار سقفنی لذنب بکی تو استغفار کن ای زلیخا یعنی به همین سادگی قضیه رو تمام کرد و در مسئله رو بس غیرتش کو این برداشتی که علما کردن غیرتش کجا چرا این غیرتی از خودش نمی چرا تنبیه نکرد این زن و الی آخر درس زیاده من من مفصلی رد بشم تو پنگخت تمومش بکنم یوسف اعرض عنها یوسف تو چشپوشی کن ست کن کسی ندونه قاضی ستر خیلی مهمه جلسه گذشته اشاره کردن که ما جرم و جنایت و نمیدونم فحشا و منکر رو سعی بکنیم ستر نکنه سعی بکنیم وظیفمون است که سترش بکنیم بعضی آدرس می اه فلان شهر فلان کشور فلان جا این اینطوری هستن آدرس داره میده خیلی از نفوس اصلا ضعیفن تمام میکنن این اشعای فاحشه است اجازه نداری بگی آقا فلان شهر مثلا پر از زنای هنو و زنای توری هنو آدرس داری میدی تو تو داری نفس ضعیف رو تحریک میکنی و برای این کار اجازه نداری باید تا جایی که میتونی ست برو کنی مؤمن رو بکنی و گناه و معصیت رو ست که کسی به طرف اون دلش نکشه دلش نکنه. مسئله بعدی مسئله غیرت چرا اینجا به این سادگی عزیز مثل از همسرش گذشت خسره؟ درش خادمینی هستن از زنا و مردا اون مرد راحت بازن چگونه اون کسی که خودش راحت با این زن اون زن و رقاصه و غیره شب و روز نگاه تلویزیون داره میکنه و حال امروز امروز خودمو میگیم چرا زن ها بی حجابن چون مرد غیرت نداره نسبت به اون دختر به اون همسرش چرا اون غیرتی نیست علت داره چون خود مرد اهل اون کاره خودش تو موبایلش تو تلویزیونش داره تماشا میکنه و بی غیرت شده این بی غیرتی از اینجا نشات میگیره اگر اون مرد چشمشو حفظ میکرد، غیرتش حفظ میشد در مقابل ناموسش. اینجا در مقابل ناموسش ما علما برداشت کردن که عزیز مصر غیرت نشون نمیده. چرا غیرت نشون نمیده؟ به خاطر اینکه خودش کوتاهی هایی که خودش داشته. مسئله بعدی در رابطه با همین مسئله چی چیز منجر شد اصلا خود این زریخا در شهوت بیفته؟ این ماجرا چرا پیش اومد؟ رسول الله صلی الله علیه و salam فرمودن به اصحاب یارانش: نز مرد گفت. لا يدخل احدكم على النساء كما قال عليه الصلاه والسلام نريد نز زن و زن نرجينيد هيك از اصحاب گفت يا رسول الله الحمد برادرم همسرم تو خونه است رسول برادرم تو خونه است الحمد برادر شوهر قال الحمد الموت مرگ یعنی چی مرگه این در تعیید در نهایت تشبیه کردن این قضیه به مرگ تشبیهش میکنه خلط کردن اون برادر شوهر با اون زن نفس ضعیفه اما راه به سوح است اینجا این زن به خاطر اختلاط به خاطر با این نامحرم دلش تماع میکنه به یوسف در شهوت میفته تا جایی که زنا در آیه بعدی هم میاد میان انتقاد میکنه از زلیخا میگه قد حب حبا عشق کورش کرده ها رو این عشقی از کجا پیش اومد از آسونگیری در بحث خلوت رسول الله صلی الله علیه و آله ما من اثنی زنه مد خلوت نه الا تعالی و ما شیطان خلوت نمیکنه الا که سومیش اون خطر این قضیه هست. هر کسی میخواد باشه برادر شوهر مرگه این دیگه نزدیکتر از این که بشه اعتماد میکنه اعتمینان میکنه بعدم بحث اطمینان و اعتماد دخترته هر چقدر با دینه هر چقدر با نمازه اینجا یوسف انه من عبادنا المخلصین الله خالصش کرده بود انتخابش کرده بود چون پیامبر بود قرار بر که دختر من و تو پسر من و تو پیانبر باشن نجات بیابن حواست جمع باشه اینترنت باز کردی تو خونه حواست جمع باشه مهواره گذاشتی حواست جمع باشه دخترت بیرون از خونه میره با کی می نشینه با کی نشست و داره کجا میره اون کلاس که میره زبان فلانه پسر هست نیست تو مسئولی کل کم راع و کلو کم مسئولن عن رعیته شما مسئولی اینجا نگاه کنید شیطان چگونه اومد این فتنه انداخت و اون زن با اون مکانات جایگاه اجتماعی که داشت همسر وزیر از وزرای مست بود امپراتوری مست ولی با این وجود خاص با اون کسی که به عنوان برده پیشش خادمه مرتکب عمل فحشا بشه این نکی کنتی من الخاطئین این نکی تو ای از جمله خطاکارانی چرا اینجا خاطئات نگفت اینجا جمع اومد خاطئین مرد و زن شامل میشه نگفت خاطئات زنان خطاکار گفت که خطاکاران چه زنش چه مردش این نکی کنت اینجا خطایی از سرخ داده حالا بعضیا ها گفتن وستغفیری لدم بگی این نکی کنتی من الخاطئین گفتن که اینجا اینها اهل توحید بودن یا نه ما نمیدونیم ولی که اون چیزی که هست استغفار کن توبه کن از این کار استغفیری لدم این نکی کنتی من الخاطئین تو از اون خطاکارانی اونها معلوم نیست که دعوت توحید و دعوت انبیا بهشون رسیده و اونا قبول دارن اون دین انبیا را و دین توحید و اسلام را ولی ایکن ما چون نمیدونیم الان ما بر فرض بگیریم اینا وسنین بود هستن بحث فحشا و منکر اسلام و غیر اسلام نداره در تمامی ادیان سرشت انسانی نمیپذیره فحشا و منکر مرد صحابی میاد نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم بگید یا رسول الله میخوام زنا کنم خب نگفت بهش الله گفت لا تقربو زنا و فلانو نیاز نداره که انسان الله بهش بگه حرامه قال اترداهو لأمک رازی میشی به مادرت گفت که نه گفت که یا رسول خب شهبتم خیلی بالا شده گفت لعمتك لخالتك لاختك تک تک اعضای خانوادهشو بهش گفت خالت عمت خواهر راضی میشی گفت که نه نه نه هر کدومش گفت نه چطور تویی که به ناموس خودت راضی نمیشی به ناموس دیگران راضی میشی این مسئله نیاز نداره تو وجدان بود داشته باشی چطور راضی میشی که اون دختر مردم بی آبرو بشه بی بشه آبروی دختر مثل آبروی مرد نیست مرد صد بارم خطاب بکنه مردم فراموشش میکنه ولی دختر نه انگوشنما میشه یک بار خطا کرد یک بار خواستهگاری اومد اون خواستهگاری به هم خورد دیگه اون در اون دختر رو نمیزنن آبروی حیثیت زن اگر لکه‌دارشون خیلی سخته تابونش سنگینه اگر طلاق بخوره خاطر همین قتل و کشتار پیش میاد باید مواظب باشیم و اون دخترمون باید بهش گوشزد بدین پدر این آبروت حیثیتته اگر ریخ کسی نمیتونه جمعش بکنه لیوانی که شکست دیگه دوباره به جای اول خودش بر نمیگرده سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله صلی الله علی محمد و علی محمد